بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سيوهاشت من درسات الزرسية تفسير سوري يوسف عليه الصلاة والسلام فارمودي الله جل شانه وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين من رب قبلي وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين سورة ربارة نوزل كادم ای رسول الله علیه الصلاه و السلام این سوره بر تو نازل شد در صبرت باشه صدق بر نبوتت باشه بر پیغمبریت باشه با این ادب اخلاق بر زندگی تجارت همه چیز از علومی که نیاز داشتن از تعبیر خواب رمزهای تعبیر خواب کلیدهای خواب همه در این سوره هست در سوره یوسف انواع علوم در این سوره بود چنانچه ما مرور داشتیم در این سیوهاشاله سه با این وجود الله میگه بیشتر مردم اصلا پیروی نمی کردن بیشتر مردم هم ایمان نمی نمیاره و ما اکثر الناس ولو حرص بمون بیشتر مردم مؤمن نمیشن حالا میاد تاکید این مساله در آیه 106 از همین سوره بیشتر مرد یعنی اندک کسانی که ایمان بیارن یعنی با توجه به این سوره پند و اندرز بگیرن و مؤمن بشن و ما تسالهم عليه من اجر یعنی این سوره این آیات بر تو نازل شده قرار بر این نیست که اونها ایمان بیارن یک زاویه از تفسیری این سوره طمع نداشته باش. چون این سوره بر تو نازل شده مردم بیان مسلمان بشن یعنی دنبال پاداش نباش در مقابل این دعوت یعنی که مردم حالا چون این آیه هست این نشانه هست این برهان از این سوره هست پس مردم بیان ایمان بیارن این یک که بعده تفسیری یک زاویه تفسیری که رب نمایه قبلی بیشتر مردون ایمان نمیارن و تو هم نباید طمع داشته باشی در ایمانشون ما متسالهم علیه من اجر یک زاویه دیگر اینه تو وظیفت دعوت اونهاست تو در مقابل دعوت پاداش مادی نمیگیری اونجا پاداش معنوی بود اون زاویه یعنی هدف تو از دعوت دادن اینه که اونها را نجات بدی حالا بخوام ایمان بیاورن یا نیابورن این دست نیست هدایت قلبها دست است لا تهدی من احببت توفیق هدایت دست تو نیست انک لا تهدی الی صلاه المستقیم هدایت می دلایت رو ارشاد میری ولی این توفیق دست تو نیست تو هم نباید تمع داشته باشی در ایمان اونها این دست الله چنانچه بحث یونس علیه السلام بارها شده که الله سرزنشش می‌کنه وقتی که می‌بیره قومش ایمان نمیارن در مقابل این معجزات و این همه ادله و براهین بعد قومش رو رها می‌کنه بعد الله نکویشش می‌کنه اینها خب اینا درس عبرته که ما توقع نداشته باشیم هر چی گفتی قبول بکنن بپذیرند و حرف ما را قبول کنن پس تمع ما در ایمان اونها نباید داشته باشیم یک زاویه تمع در مال اونها هم نباید داشته باشیم نباید توقع داشته باشیم که ما دعوت میدیم اونها مسلمان و مؤمن میشن در نتیجه باید ما از اونها پول بگیریم چون الان ما دعوتشون دادیم مسلمان شدن ما از اونها توقع مادی داشته باشیم پیامبران نیومدن که از مردم مالشونو بخواهن نیومدن که از مردم باج بگیرن پول بگیرن پیامبرم پول نمیگرفتن و ما تسألهم عليه من اجر در مقابل این وعی، این ارشاد، این دعوت، این ادب و اخلاق و آداب و داری یادشون بدی با و به این سوره تو پاداشی از کسی نمیگیری توقع پاداشم نداری و نبودم داشته باشی و ما تسألهم عليه من اجر اجرت با الله تو دعوتت لالله برای الله دعوت میدی نه برای که پیرانه زیاد بشن نه برای که دست و جیب مردم بکنی دعوت دعوت گر این بعد مد نظرش باشه اون موقعی که مردم فکر بکنن که منتی بر او دارن دیگه اون مردومن که بر او حاکم میشن حاکم بر شهر میشن مردم چون اون عالم پول از مردم گرفته اون عالم میشه وسیله ابزاری دست مردم اون عالم دیگه در تعارف میفته تا موسیقی چیه تاجر ثروتمند پول داده بهش حقوق خطیب بودنش بودنشو حقوق معلمیش و حقوق فلانش داده منت میذاره خب موسیقی حقمیشه حوال اشکال نداره آدم از گاگرگ گوش بده اشکال نداره خدا ببخشه پوله. این منته به خاطر اینکه این قضیه پیش الله رسول الله صلی الله علیه و سلم من میکنه پول مردم خط قرمز پیامبران پول نمیگیرن و تا هم نباد بگیری و ما تسألهم علیه من اج هیچ وقت و پاداش نگرفتی و نمیگیری این هو الا ذکر للعالمین قرآن برای یاداوریه برای نجات از جهنم الهی و عقوبت الهی این هو الذکر اینها یاداوریه اینها دعوت اینها بیداری اینها هوشیاری اینها نجاته کسی با پول شما کار نداره. کسی با مال شما زندگی شما کاسیبی شما کار نداره وکه ای من آیت ف السماواتی والرض یا مرون عليها و هم عن همعرضون بحث هم بیشتره که اونجا گفت و ما أكثرون نست بیشتر مردم. و کایم من آیه یعنی آیهی نیست نشانه ای نیست که میبینند چین آیات از سوره یوسف از این نشانه ها که دلات بر وجود الله یگانگیش میده از اون خواب و از اون علم غیب الهی و غیر که در این سوره داشتیم و همچنین از آیات آسمانی از خورشید که در این فضا ایستاده و در این زمان خاص زمین دورش میچرخه و خودش میچرخه و ماه میچرخه و همه اینها زمان بندی شده و در این فضا و این دقیق نگاه داشته شده بودند اون ستون هایی که ما نمیبینیم کار نیست این این شگفتی همینطوری به وجود نیومده خالقی داره آفریندی داره پروردگاری داره الله داره سرزنش میکنه نکوهش میکنه بیشتر مردم توجهی به آفرینش و عظمت الهی و عظمت خلقش ندارن بیشتر مردم نگاه نمیکنن که چرا آفریده شدن چی الله بهشون داده این چشم این گوش این طبیعت این درخت این پرنده این اب این باران این کوه این دشت این دمن این رودخانه این دریا و این قد ماهی بیشتر مردم فکر نمیزنن منن الله چش نمیبینن برو دریا ببین زیر دریا چیه؟ چقدر از این سیادا روزی میخورن از این دریا؟ انواع ماهی، انواع جانور در این دریا از خرچنگش، از مرکب ماهیش انواع این حیواناتی جاندارانی که در دریا هستن و هر کدوم خاصیتی دارن حتی اون جلبکش که در زیر دریا میروی اونم کلی خواص و کلی الان گوشت مصنوعی دارن میسازن از جلبکای دری گوشت مصنوعی گوشت قرمز خاصیت گوشت قرمز دارن و جلبکی که زیر آب بعضیا عنوان یک آفت نگاش میکنن کی به وجود آورده اینها حکمت از وجود آمدن خلقتش آفرینش چی بوده همینطوری هر کدوم یک حکمتی داشته برای خودش هر جانداری هر حیوانی اگر همین سوسکو، و و انواع این جانداران خزندگان یا حشرات ریز نبودن کی میتونست هلیکوپتر بسازه یا هواپیما بسازه الهام از همین گرفتن از طبیعت الله میگه نگاه بکنید چرا بیشتر مردم نگاه نمیکنن توجه نمیکنن چرا عقلشون به کار اینا رو کی به چرا بیشتر مردم ناآگاهن چرا نگاه نمیکنن اینجا هست که اون متوجه میشیم الله وقتی که سرزنش میکنه بندگان و بشر را میگه و ما قدر الله حق قدره مردم قدر الله را ندونستن عظمت الله را ندونستن با اون آفرینش و خلقش و که من آیت فی السماوات در وسمونها و در زمین والارض الارض یمرون علیها هست عبور میکنن و هم عنها معرضون احراز دارن روی گردانی دارن بی توجه هن این آیه در چه سیاخی اومده؟ در چه سوره اومده؟ آدم باید نگاه بکنه بهش بعد از ست آیه گذشته الله درس ها رو داره به همون میگه یادآوری داره ما میکنه ست تا آیه بهتون گفتم حرف نبود قصه نبود داستان نبود افسانه نبود درس دادن بهتون تو این آیات اینها یکی از اون نشانه ها یکی از آسمان اومده به زمین از الله اومده بر روی زمین و در اختیار ما گذاشته یکی از اون آیات و نشانه ها هست الله چی میگه؟ میگه چقدر فی مردم که روی گردونن توجه ندارن چند درصد مردم رفتن سوره یوسف را خوندن درس و رو نگاه کردن توجه کردن به مقاصدش به حکمتاش چند درصد مردم بهش توجه کردن کم یا زیاد والله خیلی کم از مسلمان ها خیلی کم اندک شد ما هم اولین بار باشه که ما وقتمون رو در یک رمضان گذاشتیم برای بررسی درس و عبرتا هم فقط یک درس و عبرتا یک خلاصه چکیده نه که دیگه ما بریم تفسیری بهش بپردازیم لغوی و قرائتی و فلان و نمیدونم وجوه حدیثیشو نمیدونم از اسباب نزولش و اینا بیا بررسی بکنیم نه که در این آیه در موردش چند تا حدیث وارد شده و چند تا اثر اومده از اکرمه اومده مجاهد اومده فلان اومده نه نه کار ما شغل ما اینجا در مباحث عبرت های درس از سوره یوسف این نبود ما فقط درس های خیلی چکیده رو داریم اینجا بازگو می کنیم حداقل چیزی رو گرفتیم که بتونیم تمام بکنی الله از باب سرزنه نکوهش میگه بر بر ماها میگه چقدر از شماها غافلی چقدر از شما روی گردانی چقدر از شما بی‌توجهید چرا شما اینطوریید برای خودتون الله میگه که من دارم میگم که این درسو عبرتا برای خودتون گفتم که چرا با این وجود شما بی‌توجهید بهش برای کی دارم میگم الله میگه برای خودتونه مصلحت خودتونه برای آخرت خودتونه ولی با این وجود شما روی گردانید توجه نداری به سخن من این گلهای هستا این سرزنشه. سرزنش سرزنش برحق چرا شما بی‌توجهید و ما یؤمن اكثرهم بالله الا هم مشریکون و ما مؤمنه اکثرهم الله. بیشتر مردم ایمان نمیوارم به الله بیشتر مردم اکثر. الا و هم میگه مشرکون. مگر اینکه مشرکن. دوچار شرک میشه. الله شرک از گر شرک کبرش هر نوعش میخواد باشه. الا وهم مشرکون. آیا احتمال داره ما هم جز این بیشتر مردم باشیم بله. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت: اخو فما خافوا عليكم شرک الخفی درودی شرک الاست. بیشتر چیزی که شما میترسن درش میوفتی. مثل ریا نمیدونه انسان در ریا میفته در خود نمایی شرکی آدم وقت بترسید ابراهیم علیه السلام از شرف میترسید و جنوبنی جنوب و بنی ان الاسلام میترسید یعقوب میترسید یوسف میترسید علیهم الصلاه والسلام شما وقت بترسید و قليل من عبادی شکور اندکن آنونایی که شکورن شکر گزارن بر توحیدن بر یک تا و یگانگین اند اندکن معلوم نیست که خودمون جز اون اندکا باشی یا نباشی خاتمانمون با چی باشه توحید باشه یا شرک باشه این گوش زده این تذکره این یاداوریه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون اکثر اکثرهم یعنی اکثر الناس بیشتر مردم ایمان به الله ندارن مگر اینکه مشرکن مشرکان در گفتارشون قسم به غیر خدا خوردن که گفتی مشرکان در نیتشون با ریا با اون تطیور که گفتیم بدگمانی گفتیم از انواعش اون کلیدش اون چوبش اون فلانش بدشومی نحسی چارشنب نحسه پنشنب نحسه نمیدن فرانسا عد نحسه این نحسه جای اعتقاده جایی فعله چه توافه داره قبل چه تبرک به قبری چه نمی دونم بستن تماعیمی تبولت و تماعیم شرکم تو که ابن کثیر همه این روایت ها رو میارد در تفسیر اینایه ابن کثیر مال وهابیه یه به قول بازیان مال امروزه نیست، مال هفتست سال قبل 80 سال قبل شافی مذبم هست چقدر از مردمم که آلودن به این شرکیات چقدر مردم هستن که الان آلودن به این خرافات ها چقدر خرافات در میان مردم هست و چقدر ما این وظیفه را انجام دادیم که بخوام مردم را نجات بدیم با توجه به این آیات قرآنی و دعوت توحیدی چقدر از این دعوت ما دلسوس بودیم که به مردم بگیم و مردم را از این ظلمات و تاریکی های شرط نجات بدیم و الگو بگیریم از یوسف یوسف علیه السلام در زندان وقتی که تعبیر خواب میکنه به اون دو شخص توجیه میکنه دعوت توحید میده در کاخش همین اینطور. هر جا بوده یوسف دعوتگر بوده و این از یه طرف دلداری هست برای رسول الله صلی الله علیه و آله از یک طرفی راه و منش دعوته از یک طرفی حکومت داریه از یک طرفی دلداریه نسبت به اون چیزی که در آخر عاقبت عزتی که رسول الله صلی الله علیه و آله بهش دست می یا در مقابل این zulmi که مشرکین میکنن بدون یوسف به این جایگاه ورتی تو هم میرسی و بالاتر از یوسف علیه السلام پس اینها در سوال عبرتاش در سوال عبرتا یکی نیست شیخ عبدالرحمن در تفسیر سعیدی بعد از اینکه این صورت این تام بشه حدیث میکنه بیش از تا فایده از فوایدی که در سوال عبرتا که در این هست این درد که مردم آلوده هم به شرک و اونم به خاطر آیه قبلیش ناشکری و که ای من آیه فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون روگردان نه اینکه نگاه قران نمی کنن. نگاه طبیعت نمیکنن، نمی نگاه آفرینش الهی هم نمی کنه نگاه خورشید هم نمی خورشید یک لامپیه در فضا گذاشته شده چراغی روشنه، اینقدر که ذکر یاد نام نیک از ادیسون میکنن، از الله نمیکنن. لامپ می دونن کی اختراش کرده لامپ نه اونین قد چقدر خدمت کرده به من اونها چقدر چقدر ثواب می برن. اینا. ای بدبخت ای خار نعمت بزرگ الهی را خورشید بر سرتو گذاشته نمیبینی اگر این خورشید نبود آب نداشتی که تبخیر بشه بارون بباره آب شیرینی نداشتی اگر این خورشید نبود تو درختی نداشتی جریان فتوسنتزی به وجود نمیامد درختی اصلا نمیروید تا خورشید نباشه درخت نمیروید ای بدبخت ای باباخ این ادیسون این الکتریسیته کشف میکنن و وامسالش از این مخترعین از چی گرفتن این برق و این نمیدونم این جرقه و این نور که چطور تولید بشه از کاه خدا گرفته دیدن کاه به هم میخوره کاه آتش میگیره بعد میان که یک الکتریسیته ی برقی تولید بکنه از چی هم گرفتن شما فکر کردید اصلا این پیراهن خودمون که از پش درست شده دیدید که وقتی که هوا خوش میشه جرقه میزنه این جرقه شده که این جرقه تو مغزشون بیاد پس میشه برقی هم تولید کرد میشه جرقه تو شب یک باشت. اون برقه را ذخیره کرد بعد اون برقه را دوباره تدر بدیم با یک جریانی اینا همه استفاده از طبیعت بجاش فکر کردید که این لام از کجا تغذیه میشه؟ غرب داره هزینهش میده؟ هزینهش از کجا داره میاد؟ از کجا داره برق تولید میشه؟ اصلا مو نفت الله که در این زمین نفت رو نمیبینید شما که در اختیار شما قرار داده شما اون ذخیره و اون تولید رو دارید میبینید که آقا این نفت بسوزه که این سوزش‌ها این سوخت ها که بر میره با توجه به این انرژی که داره سوزنده میشه بعضی ب... یا اندکی از این انرژیه بیاد وارد کابله بشه وارد سیم بشه در یک جای مخزن نگه داشته بشه و این از اون مخزن هدایت بشه به این چراغایی که برامون نور تولید کنن منشأش از کجا بوده این نور شما به منشأش شما نگاه کنید از کجا نشأت گرفت از کجا اومد این نور این چراغ از کجا من نه الهیه بخواید نخواید فرینندش الله الله آفریده نه اون مختره نه اون دانشمنند به قول شما اون دانشش را از الله گرفت ولی این مردم متاسفانه نعمت الهی را به چش ندارن انگار که وزیفه است الله بهشون بده غذا بهشون بده آبشون بده حیوون بهشون بده گوش بهشون بده نوم بهشون بده تازه من دارم بر سر الله میزون بچه ای که پدرش میگه چرا م رو وردی باید خرج من بدی من نهتم داره سان با بترسه از عقوبت الهی در مقابل این ناشریش. افع میطعتی هم قااشیه در اماید از اینکه حذابی فراگیر بر شما بیاید شما که ناشکرید خطاب الله به خلقشه به مخلوقاتشه به من و شماست. شما میگید شما در اماید از اینکه الله حقبتش بفرست شما در امان بمانید چقدر از او هستن که نابود شدن قوم سود و قوم هود و قوم نوح و چقدر نابود شدن چرا درس عبرت نمیگیرید؟ همش عبرت درس چقدر قصه این موسا در قرآن تکرار شده افع می نوعطعتی هم من عذاب الله در, امانن خوش در امان خوشون در اما می از اینکه عذابی فراگیر الهی بیاد اونها را نابود بکنه در مقابل اعرازشون در مقابل رویگردانیشون از قرآن و از توحید و از دین و شریعت الهی هر کسی روی گردان باشه نیاد به طرف دین آیا خودش رو در امام میبینه از عذاب الهی او و و بغته. یا اینکه قیامتی برپا بشه و اونها را یک دفعه نابود کنه قیامت برپا بشه قیامت یک دفعه است یک دفعه سکوت از, از محل غروب طلوع میکنه دیگه اونجا دیگه توبه هم به درد نمیخوره فکر کردی خیلی زمان مونده تا قیامت یا خودمو رو در امان میبینیم که الان قیامت برپا نشه اگر خودتو در امان دونسی نه الا قیامت خیلی, خیلی مونده اگر خودتو در امان دونسی و فکر کردی که قیامت خیلی دوره تو در تباهی و در گمراهی هستی اولین قیامتت هم مرگته فکر کردی خیلی دوره یک دفعه از مرگ قیامتت برپا شد وقتی که تو مردی فکر کردی خیلی با مرگ فاصله داری مرگه اجل هیچکس نمیدونه جز الله اون لحظه اون ثانیهی که الله نوشته که روحت قبض بشه ملک الموت میاد با احوانش با سربازانش روحت رو قبض میکنن و با مهلتم بهت نمیدن فکر کردیم اونجا موقع توبه کردنه افا امینو در امانید خود در امان میبینی فکر میکردی خیلی آدم خوبی فرشتگان بدرقت میان با گل و میبای بهشتی، کفن بهشتی، فکر کردید در امانی، خیلی شب بودی، عبادتت عبادت نازی، به طاعتت می به نمازت مینازی؟ اگر این غرور در تو اومد، عجب در تو اومد، خودخواهی در تو اومد، به اون نمازت، اون طاعتت، منت گذاشتی بر الله بدون عاقبت بد خواست شد. چرا؟ قریب من عبادی شکر. انتکن اون بندانی کشکوره به هرچه تو شو بکنی جای شکر الله را نمیتونی جبری. لایحسی ثناان علیک. انتکه مأثنت علی نفسشنان شراسط الله صلی الله علیه و سلم در دارج نمیتونم شکر و سپرست را بجوابیارم برالله. اگر تو فکر میکنی که با چهار رکاد نماز خوندنت شکر الله را بجبر تو در خسروان و زیانی. آف آمینو. انت آتیاهم غاشیت من عذاب الله. آو تأتیاهم الساعة باغتة و هملا یشعرن. در حالی که حس منمیکنم فکر منمیزدم. هملا یشعرن. احساس منمیکردم. ا میری سوار ماشینی موتوری یک دفعه از میاد و ملک الموت خبرت نمیکنه روحت میگیره میبره بالا چه لحظه‌ای خواهی داشت اون لحظه که ملک الموت اومد روحت داره میگیره چی خواهد بود اون اقبت توی که موسیقی روشن کردی سوار ماشین داره رانندگی میکنی توی این خواهری که حجابت و انداختی پس سرت دستات ارتت بیرونه باهات بیرونه عین خیال نیست نشستی در زیر سخت الهی غیبت و تهمت و دروغ میگی فکر کردی در امانی از عاقت الهی الله داره گزد میکنه همه یه مومین هم رو حتی مشرکی هم را گورزد میکنه ترسید از اون موقع عجلتون بیاد عاقت الی یک فریاد صیحه، یک فریادی بیش نیست بخواد با یک فریاد با یک کونی فاکون میکنه نابود میکنه فکر نکنید برای الله سخت نابودی تو فکر نکنید که این نابود کردن و از بین بردن برای الله سخت خراب کردن خیلی راحته و این هم خیلی مهمه و هم لا ارو عذاب وقتی که میاد حکوبات وقتی که میاد یا مرگ وقتی که فرا میرسه یا قیامت وقتی که برپا میشه در حالی که ما احساس نمی کنیم آمادگیش نداشتیم والله بالله شما بگید کدوم یک از شما آماده اید الان ملک الموت بیاد بگه من میخوام روح شما رو بکشم کدوم یک از ما روسفیدیم جلو الله بی سیم میگیم پرونده اعمالمون پر از خوبی حسناته میریم پروندهمون سنگینه در بهش در قبرمون باز میشه درهای بهش باز میشه بادهای بهشتی در قبرمون دمیده میشه منکر و نکیر میان سال میکنند میگم الله پروردگ گواره منه محمد مصطفی پیغمبر من علیه الصلاه و السلام میگی مطمئنی از خودتون والله من مطمئنی سام والله میترسم میدونم از خودم که آماده نیستم چیزی نکرده. وقتی میگم رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینم تهجدش ده شب آخر رمضان شب از اول تا آخر تهجد میخوند تا صبح تا صبحش حتی به امهات المؤمنین میگفت میگی اذان صبح رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیذاشت که بخوابن همه رو بیدار میکرد باید شب به دراز این شب به تهجد می ایستادن ما شما چند ساعتی سدیم تهجد افتخار داریم که 403 ساعت ایستادیم تہجد کاری نکردیم من و تو رسول الله صلی الله علیه و سلم از اول شب نماز عشاء ایستاده تا نماز فجر صحابہ هم پشت سرش ایستادن با وجود آخرت نماز تہجدش تموم میشه بعد میگه لا احسینا ان علیک شکرتو بگو برای الها بجنای وردم من و تو بجا جوابدیم با هم دو ساعتی که ایستادیم به تہجد افتخار میکنیم به دو ساعت ایستادنه چیزی نداریم والله چیزی نداریم والله عملمون ناچیزه والله اندکه والله شکر سپاس الله را به جانه غرور رو بذاریم کنار کبر رو بذاریم کنار این تقصیر را جلو چشم خودم بیاریم چقدر کویتوهایی کردیم به درگاه الهی در مقابل خدمت به دین الهی خودمون در امان نبینیم اون کسی که خودش رو در امان میبینه مشرکه برحضر باشید این یادآوری الهیه اف خودشون در امان میبینن خود در امان نبین مؤمن خودشو در امان نمیبینه نمیدونه عاقبتش چیه غاتره همین هی hey, باید مؤمن سوال بکنه از یوسف علیه السلام یاد بگیره و توفانی مسلمه ما رو مسلمان میمیره میترسه که مسلمان از دنیا نره باید بترسی شاید آخر عاقبت بد بدی باشه بر فسق و فجور و گناه و معصیت باشه خود در امان نبی مثل یوسف درس نداره هی تکرار میشه برای کی برای رسول الله صلی الله علیه و وسلم قل هذه سبیلی ادعو الله این دعوت به سوی من نیست به مجلس انتخابات رئیس جمهوری نمیدونم شورای شهر به سوی نشرداری و کل هندی سبیلی ادعو الی الله اجری پاداشی را ده‌ای برکه آبی اصلا هدف من این نیست برای این نیومدم انتم علی و دنیا رو رسول الله صلی الله علیه و آله حس دنیا تو خودتون بهتر میدونید من اومدم جاده الهی شما رو به آسمان وصل بکنم کل هندی سبیلی ادعو الی الله من مسی الله نبی جیب خودم نه به سوی جیب چهار تا و انجمن خیریه و نمیدونم شهرداری و فرمونداری و استانداری و نمیدونم ریاست جمهوری و مجلس و دعوت پیغمبران به سوی دنیا نیست به سوی الله قُل هَٰذِهِ سَبِيلٌ إِنْ رَأَيْتَ مَنْهَجِي من, مَنْ روش من منش من راه جاده زندگی من قُل هَٰذِهِ سَبِيلٌ این راهی که دارم میرم زندگی که شما دارید میبینید ادعو دعوت میدم دعوت مدعوین داره لازمه دعوت اینه که من یه چیزی بگم به اون کسی که میشنوه نه که با در دیوار صحبت بکنم اون مدعو هم باید محتاج باشه باید نیازمند این سخن باشه این راهنمود باشه که من راه رو نشونش بدم یعنی راهو باد گم کرده باشه و بیشتر مراد هممینن حالا روزش این که راهشونو گم کردن نمیدونن دولتی ارگانی بخواد جلو به دعوت میگیره والله دودش چش می اون دولت اون ارگان میره باید بیاد کوچه و کوچه و خیابون به خیابون باید مامور بزاره مردم دیگه امنیتی نه در جان و نه در مال خودشون نخواهند داشت وقتی که دین نباشه کی از دوزی میترسه این می میدزه و اون چه پاول میکنه این کتک میزنه و اون قتل میکنه دین نیستی که از خدا نمیترسه ولی وقتی که دین اومد حفظ جان و مات حفظ المال و مات حفظ النفس و مات کسی چشم چپ نگاه ناموس مردم نمیکنه فکر کردی دعوتیت چی میگه مال ما یک چیزی فقطیهک می کشن فقط اینا مورد را قبول ندارن مورد رو چیش رو قبول نداریم خدایش رو قبول نداریم بل قبول نداریم مورد خدا نیست خدا الله و أحد یه بالای آسممون ها یک الله قبول داریم فقط بهئی اون دستمون بلند می کنیم گدایی هیچ کسی نیستیم جز الله مننت هیچ کسی برمانید زود الله همون چیزی که در سوره ی داشتیم عنی فقط خاطر همین یک چیزی که با ما بعضی اختلاف دارن ما نباد حرف بزنیم نباد مردم و صیحت بکنیم نباد مردم را بهئ این دعوت بدیم فقط بخاطر همین اختلاف شما ما در همینه راه مبسی اللہ اللہ انجری از ما خواست قل ها دی سبیل ادعو الى اللہ نا الى قبر نا الى ضریح نا الى ولي نا الى شیخ نیلا مرید ها دی سبیلی ادعو الله ما برای الله و لله و بسوی الله دعوت میریم میگیم مردم خلق الله برشون منتی ندارن منتی مگر دارن خاطر الله دارن الله که منانه الحنان، هو المنان صفات الهیه الحنان والمنان منت ها همه از الله خلق الله وسیلان این توحیده این یک پراسیه این یگانگی الله در افعالش در صفاتش در ربوبیتش و خلق آفرینشش الله یک تاست قل هادی سبیلی ادعو الله بس. یعنی الله بهش شخص نیست، کس نیست، دنیا نیست، فقط یک چیز الله اگر من اینجا دعوتم به سوی خودم بود، به حزبم، گروهم نمیدونم تک و تشکیلاتم، حالا می‌خواد دولت، کشور، انجمن، هر چیزی میخواد باشه. این دیگه دعوت به الله نیست. اینجا دیگه شده مسجد پایگاه انجمن خیریه، پایگاه نمیدونم نظامی، پایگاه نمیدونم سیاسی، پایگاه دعوت به سوی الله پایگاه الهیه نه پایگاه دنیوی نه پایگاه سیاسی و مادی دعوت به سوی الله پایه و اساسش فراخوندن مردم به سوی دین الهیه نه به سوی دنیای مردم نه که ما بی مسئولیتی در مقابل مردم نه ما راهنمایی میکنیم ولی ما مکلف بر دنیای مردم نیستیم وظیفه یک عالم نیست که بیاد جاده بکشه کوشه و خیابون درست بکنه پول جمع بکنه وظیفه عالم نیست وظیفه عالم ارشاد دعوت به سوی الله بگي الله حسين رازي از اين رازي نيست به مردوم اين بگه چي حلال چي حرامه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره بصيره گفت ما چشمه بينه انا ديدي روشان ديدي واضح تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها على المحجة البيضاء تركتكم شمار الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمان رها كردم بردديل وبرهاني واضح سنت وقرآن واضحا ليلها كنهارها شبش بسر روزش روشانه اونایی که تعویز میبندن با این حدیث رسالتم چیکار میکنن نه آیه قرانه نه حدیثه نه دعاست شما چیکار میکنید رسالتم میگه ان التمایم شر تمیم شرکه چیکار میخوای بکنید اگر حدیث نش نیدید ندیدید برو ببینید با اسناد صحیح در صحیحین روایت شده و غیر در کتب سنن روایت شده چقدر حدیث ما دارین درباره دا تمیمه چرا هنوز مله ها تعویز میکنن مینی و تو پاچه مردم میکنن پول از اون و پول و شیرینی هم میگیرن در مقابلش خب چرا کجاست این بینش کجاست این محجت واضح و در تاریکی به سر میبرن در ظلمات جهل به سر میبرند چرا چون دنبال سنت نیستند دنبال نور نیستند پس دعوت به سوی الله باید روی بسیرت و دلیل و بدرک باشه روی نور باشه ترتک علی المحجه البيضاء بر اساس قرآن و سنت صحیح نبی باشه نه بر اساس قصه های در وردی داستان های خودشون بعضیا ها می بافن و به خورد مردم میدن با چهار تا حدیث دروغ و روایت دروغ و خرافاتی که الله میدونه از کجا آوردهن به مردم میدن یا بعضیا در مصنعی این معنی با سر باز میکنن بعضیا ها در کلیل دمنه باز میکنن بعضیا ها در داستان نمیدونم لیلی و مجنون باز میکنن منبر دعوت جای سخن این و اون نیست جای سخن الهیه و وحی الهی بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نمیگم که منع از این که تو سدلالی بکنی یا بیت شعر شاعری بیاری یا فلان بیاری یا مثلا حرف اندیشمندی فریغته بیاری نمیگم نباشه اصلا اگر میاری در تایید کلام الهی میاری نه اینکه مستقل و استقلال خود به میشنوی از اول تا آخرش یک دونه آیه توش نمیبینی یک دونه حدیث توش نمیبینی این کجاست دعوت به سوی الله دعوت به سوی الله با حرف الله نه با حرف غیر از الله میخوای دعوت بدی به سوی الله باد با حرف الله خودش باشه هیچ کسی الله که ندیده الله باد اون چیزی که خودش معرفی کرده از خاصیت های خودش اونه باد بیای بی مردم بگی الله چی خاص از مردم مردم که نمیدونن الله چی خاص ازشون تو وظیفت که به مردم بگی الله چی خاص ازشون شتر خودشو معرفی کرده به مردم سميع بصیره لطيفة رحمانه رحمیه این حلال این حرامه تو وظیفت که اینو به مردم بررسی میکنی قول هدی سبیل ادعوا إلى الله على بصیره با بصیرت با بینش روشن واضح آشکار حجت آشکار و واضح که رسول الله صلی الله علیه و آله اون از خودش به جا گذاشته باید واضح هم باشه باد بدونی نوع استدلال نوع استنباط بدونی این حرف رسول الله چطور ازش برداشت بشه منظورش چیه وقتی که جهل باشه کورکورانه باشه دیگه این بصیرت توش نیست تقلید باشه دیگه کورکورانه از بصیرت توش نیست. بصیرت یعنی بدون تقلید عقیده تقلیدی به درد نمیخوره من آب و اجدادم موحد بودن من پدرم یعقوب پدرم اسحاق پدرم ابراهیمه. به درد فرزندان یعقوب خورد قصه داستان به دردشون میخوره پدرشون یعقوب بود نه خورد استغفار کن برامون گناه کردیم معصیت کردیم اگه الله ما رو نبخشه جهنمی تخلیل به درد میخوره نه به درد نمیخوره باید الله را با بینش با دلیل نگاه آسمان نگاه زمین نگاه آیات قرآن الله را با دلیل باید بشناسی با مدرک را باید بشناسی و شریعتش رو با را باید دلیل باید قبول بکنی چی دلیل بر اینکه این حرام موسیقی حرام زنا حرامه نمیدونم نگاه نمحرم حرام حرامه، نمیدونم فلان چیز حرامه چی دلیل مدرک چیه نه کا علام فلانی گفت حرامه خب دلیلش چیه چرا گفت حرامه وظیفمون اینه که ما بدونیم حلال و حراممون آیه قرآن رو بدونیم حدیث رسول الله صلی الله علیه و بدونیم و بشنیم این بهش میگن بصیرت الله میگه به رسول الله صلی الله علیه و بگو این روش منه در دعوت ومن و من و هر کسی که از من داره پیروی میکنه این روشه روش قرآن و سنت دعوت با بصیرت روش منه و پیروان من اون کسی که پیرو رسول الله صلی الله علیه و نیست طرف ریشش چهار رسول الله صلی الله علیه و صدقه میداد، رسول الله صلی الله علیه و سلام زکات میداد، گفت زکات بدید، تو چیت به رسول الله صلی الله علیه و سلام میخوره، شکل قیافت کجاست به رسولله الله صلی الله علیه و سلام میخوره؟ تو کجا پیرو پیغمبری که داری به منهج و روش رسول الله صلی الله علیه و داری دعوت می کی حرف تو میپذیره اصلاً؟ مردم به چه چیزی نگاهت می کنن؟ شکل و قیافت رسول الله صلی الله علیه و نیست، پیروی در عملت رو نمیبینن. تو وقتی که خودت پیرو رسول الله صلی الله علیه و چطور مردم دعوت می پس تو باید پیرو صلی الله علیه و بعد بیای دعوت و الناس بالبری و تنزون انفسکم مردم خوب باشن و تو بد باشی تو هر کار دلت انجام بدی مردم نه مردم باید بدن صدقه بدن زکات بدن تو ندی بس خیلی مهمه که اون کسی که دعوت میده راه راه رسول الله صلوات اول خودش باشه خودش مثل رسول الله صلوات در گفتارش در زندگیش در حلال و حرامش پای بنده به سنت نبوی باشه علیه الصلاه و السلام. و مردم را به سوی اون پایبندی دعوت بده یعنی پیروی اتباع و من اتبعانی یعنی اتباع پیروی پیروی با بصیرت پیروی با مدرک با برهان چرا ریش گذاشتی چون رسول الله صلوات الله علیه و آله گفت عفولها چرا پیراهنت پی بالای کعبه چون رسول الله گفت ما اسفل الكعبه اینا فدنا زیر کعب در جهنمه اینی که مردم مسخره بکنن و این بگه فلانه و این بریش من بخنده بخنده امروز اینا مسخره میکنن روز قیامت ما مسخره برشون میکنیم در صحنه محشر اونجا مشخص میشه که کی حق بوده ترسی از مردم نداریم تعارفی هم با کسی نداریم دینمونه افتخارم میکنیم به اون چیزی که الله از ما خواسته و به اون راه و روشی که توفیق بهمون به داده در مقابل شک گزار و سپاس الله اللهی تعارفی با کسی نداری مثلا من دیگه نمیدونم در مقابل کسی و سبحان الله و ما انا من المشرکین و سبحان الله و پاک و من عزاه الله الله پاک و من و ما انا من المشرکین ای محمد علیه الصلاة والسلام ای پیغمبر من الله بهش میگه بگو منم از هر گونه مشرک و شرکی بری هستم و ما انا من المشرکین چون شرک می در جانب ربوبیت باشه که گفتیم چی میخواد در جانب اسماء صفات باشه چه میخواد در مقابل الوهیت الهی و عبادت الهی باشه هر نوع شرکی چه در مقابل هوای نفس باشه پیروی از هوای نفس شرکه پیروی از شیطان باشه از معصیت باشه شرک در طاعت که دیدارش داشتیم اتخذوا احبارا و رهبانا واربابا من دون شرك اتاته فلما اتاهم صالحا جعل له شركاء ادم حوا. عشاق بعضی مفسری گفتن ادم حوا نیست خب سیاق در بس ادم حواس چون چبنا اباصمی رضی الله عنه شرک در طاعت ما میفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجا الله ازش میخواد که اعلان برایت بکنه از هر گونه شرکی چه شرک اکبر چه شرک اصغر باشه و چه گناه کبیره باشه من از جمله مشرکین نیستم که کسی را با الله در عبادتم در طاعتم شریک قرار بدم من فقط الله را میپرستم من فقط الله یگانه را به یگانگی قبول دارم و ما انا من المشرکین هیچ نوع شرکی نه ریاکارم, نه ریاکاری میکنم نه گناه انجام میدم إن نزاهاته كواكي رسول الله صلى الله عليه وسلم زيترف السرف لديكار بحث أهمية توحيده که روش رسول الله صلی توحیدش بر این بوده که رسول الله صلی چون آلوده نبوده در دعوتش در عبادت و منشش و زندگیش ای مؤمنین شما هم مثل رسول الله صلی الله سلام اگر می‌خواهید اگر پیرو راه رسول الله صلی الله سلام شما هم براءت بجویید از هر گونه شرک و معصیتی از هر گونه ریا و از هر گونه بدعتی شما هم دوری بجویید چنانچه پیغمبرمون علیه الصلاه و السلام اینطوری بود الله یگانه اینجنی ناز ما می‌خواد و ما انا من المشرکین سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله والحمد لله صلی الله علی, علی محمد و علی, محمد و علی محمد. محمد.